در مورد بیدعت و توضیح توزیده به طور کلی که آمال بیدعت محصول میشونم بیدعت من احدث فی امرنا هازم مالی سمنون فهو ردون هر کسی در دین ما در شریعت ما چیزی را آور نو آوری کرد که جز دین ما نوود فهو ردن. این مردود هست این بیدعت هست این تعریف اولی که حدیث اومده تعریف دوم اگر عملی که در خیر القرون انگیزه آن عمل بوده دایی عمل بوده اما در خیلقرون آن عمل را با حدود دایی انجام ندابعا این بدعته مثلا به طور بساس جشن تولدها سالگردها سالگرد, سالگرد وفات یا تولدها این حد چون تولد این روزی نیست اون زمان هم بوده نبی کریم کردن نصحابه نتابی نتابی تابی کسی کارو کار پس سالگرد وفات اون زمان ها برگ بوده کسی کارونه رو نکرده پس کاری که عملی که دایی آن در خیر القرون بوده و باوجود دایی آن اونها انجام ندابی این میشه بدعت اما همه چیز نه اگر اول شما جزدین بدانی اگر جزدین کسی ندانست، عملی کرد دعوتی گرفت یا این مراسمه ازدواج در صورت میگرن و طبق روز ازدواج میکنن همهشون بدعت نیست هم اونهای هم. اما یه تعریف اما یه اگر کاری رو کسی انجام داد کسی رو کار انجام داد که اصل آنکار در شریعت وجود داره و بنابر اون کار اسباب پیشرفته کار رو گذاشت این بدعت نمیشه مثلا حدیثی داریم که نبی مکرم داری حدیث صحیح داریم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودن که من سنه سنته سیئه اگر کسی یک روش بدی را در اسلام گذاشت گناهش بر خودش و آنچه گناه دیگران میکنه برای همون بنیانگزار و تحسیس گذار هست اما حسنتا اگر کسی یک روش درستی را در اسلام آورد که دواره مردم عمل می و همه بر این عمل بودن این, سنت این روش درست درست هست اجبش می رسی هر چیز دیگر را عمل بکنن این هم در عجرش وارده مثلا الله خیلی گیر آویان رو این که صدق الله العظیم گفتم بدعته در حالی که این بدعت نیست چرا بدعت باشه حدیث دارین داخل مؤتی امام مالک و مؤتی امام محمد مرءاه المسلمون حسنان و هو عند الله حسنون آن چیزی مسلمانها او رو خوب حساب کردن مسلمان‌های مؤمن متقی اعماری رو خوب حساب کردن در نظر کار خوبی بود این کار در نظر الله هم خوبه این حدیثه داخل مؤتی امام مالک و امام محمد این چیز اومده پس اینکه این مدارس دینی حالا بشت... نگه تبلیغ بدعته این تبلیغ بدعت نیست چون اصل دعوت بوده انبیا دعوت دادن دعوت دادن همی رو داد به طرف الله رب العالمین دعوت دادن حال این روشی که اومده این روش تبلیغ هست این روش پیشرفت کار هست این یک نظم هست یک ترتیب هستی مثل دانشگاه ها دارین از همون به سلام پیش دبستانی سانیک میشه دبیرسان میاد متوسطه میاد دبیرستان میاد دانشگاه میاد مراتب عالی اگر بدعت است پس اینها باید بدعت واسم مگر فیام اینجوری دست داد تعریف داد بیان بخاری خوندن هم چه میشه و گفته بخاری شما بخوری فلان کتاب بخونی تپی اینجوری باشه. اینها روش پیشرفته روش کارن اینها نمیشه گفت بدعت اینا بدعت نیستن و بعد مسئله بعدی که بدعتنی استنباطات اگر یک عالمی یک مسئله را از احادیث و قرآن که اصول مسلمی استنباط کرد این بدعت نیست چرا الله میگه لا علم الذین استنبتونه اونهایی که بدون استنباط میکنن الله رب العالم تعریف میکنه اونهایی که استنباط میکنن لا علم الذین استنبتونه پس اینها از خود بدعت میره بیرون اما کاری در اسلام نبوده و دوباره انگیزی هم نبوده افکار وجود نداشت و باوجود این کار در دین آوردین او ها جز بدعات آت قرار می‌گیرند.